بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب الرحیم و صلاح الله علی سیدنا رسول الله و آله قیلین اتا قدرین المعصومی من لعت و دائمت و علی عردای اللهم افرنا جمعی المشترین و رحمنا و رحمتی که و رحمنا رحمی که یه حوض یه رقایتی بخوندیم که احمد ابن محمد علی ابن حسن بود در همین باب تقن برموامن باب 159 کتاب و عشق و و از کریم باید حسن ابن علی باشه و آیا فهمده در کافی این طوره در چه نسخه حسن ابن علی بوده در اون نسخه که من باز منشه مراجعه شده علی ابن حسن همینطور که ایشون و حسن علی نیست علی ابن حسن که ایشون ابن فضال پتره نه ابن فضال پتره اون وقت یه توضیحی تصادفاً عرفه من دیگه دیدم که اون که بحثیم اون باب رو همونجه نگاه کرده بودن به دقت نگاه نکرده بودن این حدیث رو مردم صاحب و سائل از دو جای کافی استخراج شده اگه همون با خدمتشون هست باب با صد و هنجه عنوه از دو جا استخراج شده متاسفانه مرمونهای ربانی یه جا شده نوشتن و ایش اون بایی که دقیق هم خیلی رحمت الله علی مورد دوم استخراج نکردن اون سند اولی که آمده در اصول کافیه این سند که توش احمد محمد علی بن مرحسنه تو روزه کافیه متاسفانه مرمونهای ربانی استخراج نکرده این منچه اشتباه ما این شد در واقعه مشکل کار رو این روزه این نکته دو خب در این کافت آینن اولوید اولوید این رو از کتاب روزه کافی استحران شده باز همون مشکلی رو که ما کرارن عرض کردیم هنوز در کتاب رسائل چه سننن چه مفتنن بعضی مشکلات هست که متوفق بود در تحقیق کتاب اینها ها بشه بیان بشه متاسفانه اینجا هم نشده اولاً، من یک بحث طولانی رو سابقاً ارز کردم که امروز شدیم خواهده این بحث بشیم مرحوم کلینی آبتاً از احمد ارشری که اونم احمد ازن محمده و احمد برقی که اونم احمد ازن محمده بی یک واسطه نقلی میکنه آبتاً این طوره از این دو بزرگوار رو درست نکرده بی یک واسطه نقل لیکن مرحوم کلینی دو تا از مشایخ رو در کرده اسم اونها احمد بن محمده دقیق کردی اینا دو نفر دیگر هستند این به اون و بردی نفرند اینها استادهای خود کلینی هستند اینا اسمشون احمد بن محمده کلینی از اینها مستقی نعبیل کرده یکیش اهل کوشه هست که معروف از به ابن اغده زیدی زیدی المذهب حتی این ابن اغده وفاتش حدود چهار سال بعد از کلینیه بعد از کلینی بنابرای معروف 328 یا 329 وفاتش هست اینه که هم میگن بنابرای معروف شه. این همه نوشتن یعنی این اختلافی نشد چون نوشتن در سال تناسر و نجون یعنی بارش شهاب به اصطلاح وارش شهاب ها در سال تناسر نجوم کنفروت کرده در تاریخ در 128 و 328 و 329 تناسر نجوم ننمیشن این که من میگم معروف فعلا خودم من تحقیق خاصی ندارم در این دو سال تناسر نجوم ننمیشن تناسر و نجوم 324 نمیشن میمیده دو سال با هم نمیخوره نمیخواه نمیخواه اونی که در کتب ما تقریبا همهشون نوشتن نویشتن هر که شرحال کده این داده یا 328 یا 329 یه مسلماته دو مسلمات از اون بر مقایسه کنم با تناس نجوم که بارش شهاب باشه و بارش شهاب رو در تاریخ تناس و نجوم که خیلی شهاب باران بوده سال 324ه لذا حالا اگه های که از پیدا شان تحقیق بکنم با خیلی این تاریخ با مرحوم به اصطلاح کل اینه 328 یا 329 بنابرای محروف وفات ایشانه و وفات ابن عبود 333 دین بوده در منع اهل سنت گاهی کسانی بودن که پیر مرد بودن از یک جوان حدیث نمتن مثلا آزت هم اینطور نیست که استاد چخص بعد از اون فوت رو اما این دارن خیلی تنبان دارن اهل جهت حالا من بعد این به هر حال ابن عبدالز و بزرگان زیدی در گوشه بوده و فوق الاده دارت وحشتناتیز در حدیث و حافظه یعجید روز نوادر ده اگر راست باشه موقت سیتر هدار حدیث و سنده من, من حفظم واقعا اوجوبه ایزه مردم ها کلیگی ازشان نه میکنه و یه مقدار میراث ابن فضال پسر رو ازشان چون بحث علی ابن حسن یعنی ابن فضال پسر دارای نطایف فراوانی است اینشالله یک مناسبت دیگه پیش شد اینجا که همسی پیش نهمده به شرقی ما اونجا باید عرض بکنید یک نکات تاریخی و خواست رجالی و خاص خواست خودش داره که اینشالله اونجا ارزش مرحوم کلینی توسف ابن عوضه شیخ همگاه داری ابن عوضه اینم بوده این اخصاص کلی نداره و این غربه اسناد یعنی کلینی یک واسه از ابن فرزال پسر محلوم کن احتمالا ابن عوضه شوال اوائل جوانی شده چون حدود ابن عوضه چیزی حدود نزدیک ش سال پنجا بین پنجا سال بعد از ابن فرزال پسر احتمالا جمعا بوده خیلی جمعا بوده حبا کوفی هستن مشکل نداره در کوفه بود از روش نکنه پس سنابراین اگر در کتاب کافی احمد بن محمد همه ابن علی و حسن بود اینجا مراد از احمد ابن اغده است. یک جا احمد بن محمد استاد کله نیست یکیش ابن اغده است لقدر فرموزید یکیش هم احمد ابن محمد ابن احمد ابن بیرم آسم ابن ترحط این از مشایخ بغداده ایشون هم اسمش احمد ابن محمده درست ایشون از مشایخ بغداد کولمی ظاهرا در سفر که به اراغ داشته خدمتی ایشون رسیده در بغداد لکن ایشون اصلش از کوفه بوده آمده بغداد در بغداد مصادر کوفه رو نقل کرده من جمله باز کتاب ابن فضال پسن پس مرحوم کلینی دو تا احمد محمد داره که استاد ایشان هم یکیش ابن عبدال یکیش هم آسمیه دو تا حالتی پیشتر داره احمد محمد که به یک واسه از اونها نحبی میکنه یکیش به اشعریه یکیش برقیه این دو تا با هم خلق نشنه ما هم به از هر دو اون وقت مرمون کنه توسط احمد اشعری کتاب ابن فضال پدر رو مرمون کرده شد کنه این در کتاب کافی هم احمد بن محمد از ابن فضال پدر آمده هم احمد بن محمد از این فضال پسر آمده انشاءالله روشن کنه دارست اون جایی که از پدر نرمون میکنه احمد اشعری. اون جایی که از کسر مرمو میکنه یا احمد تو جایز ناخده از پدر به دو باسته نرمو میکنه از کسر به یک باسته میکنه یعنی اون جایی که از کسر هست استاد خودیشانه این نکته میشه آگه رو باشن سوم، نکته ثبوت بعضی جاها در کتاب کافی مثلا اینجور میگه تاکیدم محمد ابن احییان احمد بن محمد آنو بسیار سریع. خب؟ بعد دیروز خصلت میگه احمد بن محمد آن مثلا علی بن الحکم. این اصطلاحان به اصطلاح بعضی آلات اسم شعر محقق تعلیق میگن. میگه شد وار حدیث قبلی بود محمد ابن احییان احمد بن محمد. بعد گفت احمد بن محمد یعنی چی؟ یعنی محمد ابن احییان احمد بن محمد. تعلیقش داره به حدیث قبلی. گویا انتقالش یشده یبوسته است. مثلا میگه علی بن ابراهیم انا عبیه انا حماد، انا حرید انا زراره بلا فاصله بعدش اینگه حرید از محمد ابن مصلحه یعنی سند بعدی افرس به اول یا به اصطلاح های اون تعلیغا تعلیغ بر حدیث صادقه این اصطلاح هست در کتاب کافی در ازی جاها احمد ابن محمد اول سند آمده مرقوم ساحل وسائل اشهاده خیال کرده تعلیقه یعنی ایشون از آن احمد محمد یا اشعری بفرمید یا برقی در اینجا در کتاب روزه حدیثی که قبل از این هست اینطوره محمد بن یحیی بن احمد بن محمد در اصطلاح خاصه گفت احمد بن محمد انا حسن علی ابن حسن صاحب وسائل بغری در, بسا... در کافی از احمد نه محمد نه احمد انا علی ابن احمد هم داره حالا من نمیتونم سا و چه اشتباهی برای این مرد بزرگوار پیدا شده بین احمد چیز که نقومده اصلا روشن شد دارتون حدیث قردی محمد ابن در روزه انا احمد نه محمد این حدیث احمد ابن محمد ابن احمد این بن احمد داره به نظرم شد چون سیر ایشان بوده بن احمد اعتماد بیامل علم و اندالله ایشون خونده احمد ابن محمد تعلیلش یا تو حدیث قبلی؟ یعنی افتیال کرده احمد اینجا احمد ابن محمد یا اشعریس یا برگی این متاسفانه همین اخیرا هم در بحث حجیت ذواهر کتاب یه حدیثی بود در همون کتاب وسایل بازم اونجا من این توضیح دادم اونجا هم اشتباهی حساب وسایل کرده در چند مورد حالا من در وسایل دیدم متأسفانه ایشون این اشتباه رو کرده اگر در اول سن از احمد وارد شده اثر بر حدیث قبلی گرفت اگه قبلش هم قبلی قبلی گرفت یک محمد میهری رو که اضافه کرده تو کتاب وسایل نیستا تو کتابی نیست ایشون اضافه کرد. یا که این کار ایشان‌ها درست نیست یعنی صداره ایشان درست نیست احمد بن محمد بن احمد داره تصویر داره در کتاب کافی احمد اشعری احمد بن محمد بن ایسا احمد برقی احمد بن محمد بن خالد پس هیچ کدوم اینها احمد بن محمد بن احمد نیستن این دو نفر هیچ کدومشون احمد بن محمد بن احمد نیستن یا بن احمد احتمال میدم دن بله علم و اندالله در نسخه وسائل بن احمد افتاده بوده چون احمد و محمد خونده احتمال میدم الان در نسخه شاپی ما بدون اختلاف نسخ احمد ابن محمد ابن احمد داره تصریح داره به اسم سلاتی تصادفاً حدیث بعدیش هم همینطوره بازم احمد ابن محمد ابن احمده بعد از این حدیث اونجا هم تصریح به اسم سلاتی داره برشن تو لذا در وسائل این تو چاپ شده این حدیث 159 نگاه بکنیم نرشته محمد ابن یحییٰ ان احمد ابن محمد این محمد ابن یحییٰ اضافه است که صاحب وسائل کرده این محمد ابن یحییٰ رو برشن این منشه ای اشکال ما هم همین شد یعنی این دیروز من اشتباه من اشتباه میگم من قبل از اینگه درست رویم تصالتایم دیروز همینطوری نگاه کردم احتمال نید با سال و سواب خراب کده حدیثیت تو زهن این احتمال نه من و هر حال اگر محمد بن یحیاء اما احمد باشی اینجا اشعریه اما این نیست در کتاب کافی این نیست در در این محمد بن یحیاء افتظهار صاحب وطائله لذا هم اینجا این نقطه به عرض بکنم یه بحثی هم هست که اگر ما بنابرای شد مثلا یک چیزی شبیه وصاره یا جمال احادیث ببینید چه کار بکنید سوال مثلا داره علی بن ابراهیم عن ابي عن حماد عن حريز عن زباره بلا فاصله بعدش میگه زب حريز عن زباره اینو ما چه جوری بگیرید حريز عن محمد مثلا صاحب و این میگه چون تعلیق از بر حدیث ثابت اینجور بگید علی بن ابراهیم عن ابي عن حماد عن حريز بن محمد اون که تعلیق شده بیاد یعنی صاحب وسایل اونی که الان موجود در کافی است خودشم و خودش هم اشاره میکنه رو شد. شم. آیا بروجیدی این بود نه؟ حدیث و همینطور که در وسایل در کافی هست میاریم. اون بس که بیکی ممکنه استنباط بکنیم یا تعلیم میدیم این تو پرانتز بگذاری. پس اگر در کتاب کافی سند کامل آمده کامل میاریم. اگر ابتدا به عریض کردیم ما استفادتم به حریض فقط ما می‌دونیم کلی از حریز نقل نمی‌کنه مثلث رو کلی از حریز نعده توی پرانتز بگذاریم علی ابن ابراوین عن ابي عن حماد انا. اینو تو پرانتز بگذاریم برای چی برای اینکه نشون بدیم این استظهار ما باشه چیکارalse این کار انصافا علمی تره یا تو پرانتز تو ها چیه انصافا اگر ما باشیم و منهج علمی که آن. تا سقه دانشورهای جهانی مراقبت میشه همینه راه درست همینه اگر صاحبتان سا این کارو کرده بود ما احتیاجمون نموند از اینکه 20 صفحه برای کتاب تبییه بدی متأسفانه در کتاب وسائل امال محمد بن یحیی علی احمد ابن محمد که دیروز دروس در مورد شبهاتو بحث کرده اون آیه آقا فضلنا حسن علینی نه تو این نسخه کاپی که من دیدم یعنی نسخه که بعد دارم مکتوب که نه والله مگر نسخه دیگه باشه بعدم مراجعه کردیم به روزه از این اشکال هم یه مقدار مرموم آقای ربانیه ایشون از روزه استتون نسخه من از روزه استخراج نکرده یک مقدارم هم آرون آلوی باید حقش رو که می نوشن. از بوجود سلمسته احمد ابن و محمد ابن احمد ان علی احمد حسن. این آرون هم ظاهرم توجه نکردن این احتمال نیده این کلمه بین احمد بسنه مطلب رو کلان عوض بکنه رفت کردید کلنه بن احمد که نبود احتمال تعلیق توش بود که تعلیق به حدیث قبلی باشه لذا سال وسائل تعلیق فهمیده الان عملا در کتاب وسائل این طور آمده محمد ابن آن احمد بن محمد ان علی بن حسن در کافی این نیست در کافی احمد بن محمد نه احمد ان علی بن حسن قبلش یک حدیثی هست محمد ابن یحیان احمد ابن محمد سا بساید تعلیق و اون قدی شده و اون تعلیق رو بیان کرده لذا منشه این گیر ما شدید گیر کردید که اینجا علی بن حسن چه خاری بگارید لیکن با, با مراجعه که ما به محضر کردیم دیگه شبه هم شد به هیچ بشته نداره احمد ابن و محمد بن احمد همون آسنیه احمد ابن محمد ابن احمد ابن, ابن تلحط ابن آسم البته آسمی این در اطلاق یکی دیگه از بزرگان اصحاب ماست با اونی جن. این پسر برادر اونه اون اموش بوده به انتصاب بروب اینا نگفتن آسمی ایشون خودش بچه ی آسمی نیست احمد اموی ایشون آسمی عبالحسن آسمی معروف اونی ایشون پسر برادرشه ابن عخی از آسمی حبالحسن از ابن آسم چون که سر برادر بوده انسان. مثلا آن خاندان کسانی که از برادر های زراره هست معرووب هم به زراری مثل زوراری ابو غالب زوراری نوه زوراره نیست نوه عبدالله ب بوکیب کگر برادر زراره هست. وکه م دی که زراره داشت اقض کرد خودشو بچهاشو, بچهاشو, بچهاش بچه ها و بچه های بردرشه همه رو می گفتن زراری بچه های برادرش بودن زراری نسبت رو به خاندان زراره میدادن با اینکه نروهای های زراره نبیدن. این آقا هم نوی آسمی معروف نیست آسر ابن آسم معروف لیکن گفته شده پسر بردر شده به احترام او به این آسمی میگفته و از کردن مرهوم کلیمی از دو را های ابن فضال پسر علی حسن نهارو کرده یکی توسط این آسمی یکی هم توسط ابن اغده ابن اغده اسم کاملش احمد ابن محمد ابن سعیده پس با آبادن این عبارت از مرموم کلینده که جایی ابحام تعلیق هم نیست مشکل هم نداره ایشان هم سغط این بزرگواره اصلش از کوفه بوده ساطر بردار بوده و مرموم نجاشی به شیخ داره که یه روی انشیوخ کوفیین اینجا شیوخ کوفه هست مثال بارده بود حس اون حدیث و آیان تأمل بفرماید این حدیثی که آوردم شد یه روز از سال اونجا در کتاب وسائل شیطا بود و محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحسین این ضعف صحیحش اولا محمد بن یحیی رو صاحب وسائل اضافه کرده این با برداشتش میشه چون خیال که تعلیق بر حدیث قبلی تعلیق نیست اشتباه کرده. ایش. و احمد بن محمد استادی ایشانه به یک واسطه ازش نبه اون احمد بن محمدی که استادی ایشان در اینجاست به حسب این ای که من الان نسخه مطبوعه کافی است، احمد بن محمد نه احمده این, این آسمیه احمد محمد آسمی بغدادی که از مشاریخ بزرگوار و اجلاست و کلینی هم در بغداد خدمتی ایشون رسیده مقداری از میراث کوفه و ترسطی ایشان نبه تاریخ این میرا ها هم واضحه یعنی اینها هم به اینلهاست ندارن. این کاش خوب بود یا در تحلیل قبلیه و سالالده در تح جدید به این نکته توی داده می شد و این کار که سال مسائل انجام من ش اشغال برای ما شد که این حسن نری اینجا کیه که مردم احمد اشرعری نرکه پس اوشن شد، اصولا احمد در اشعری نیز. اینجا اشعری نیست اینجا عاصمیه. ایشون استاد کلیمیه مستقیم از ایشان نه مباشر ایشان میکنه و این آوا میراس های ابن فضال پسر رو نعقل کرده داره کلیمی علیه ابن حسن ابن فضال نبیدان که کافی مفروع ما هم به نظرم تیمی داره شاید باشه دقیقه این روز نراتم کافی داره حقاستم که محال مزاجیم رو سرم خودگی داشتم دقیقه نکنم علیه ابن حسن تیم همون ابن معروف معروفه اینا منسوبن به علی و به الله و نسبت به قیم الله رو مثل عبد شمس سه جور میگن یا عبد میگن یا شمسی یا اقشمی. نسبت به این عشیره رو هم یا تیمی میگن الله یا تیملی تیملی هم همینه علی بن عاصم و علی بن حسن تیمی و علیه ابن حسن کوفی و علی بن فضا یک نفرن ابن فضال پسره این هم یک توضیحی بود راجی به حدیث دیروز که انشاءالله خدمت آنان واضح باشه برگردیم به بحث روایاتی که ما از اهل سنت از در روایات ما روی مسئله لعن خیلی تأکیب نشده چون نشد ما خالی از بعدی از نباشه این بعضی از روایات اهل سنت رو چون در این جهاز بیش از ما خیلی بیش از ما مطلب دارن و حدیث دارن با اینکه که هم خلافش هم زیاد کرن. بعد مسئله لعن و ایشان اصل در صفحه سر و سیوله از, از این چاپی که من زن چون چاپ های احیاء خیلی مختلفه ذکر صفحه تقریبا لغه و باید نیست باید به مسادر خودش باشه ارس کردم در ربع مهلکات یک مقداری مربوط به زمان می جمله آفات زمان گذاره ال آفات و سامنه ال بعد روایات رو داره قال صلوات الله و سلام و علی المؤمن ليس بالعام بله ولا بالطعام همون که این رو در ترمذی آورده که حسن است و قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه و لا تلاق لا احتمال تلاقن باشه تاش تا اولش افسازه لا تلا هم احتمال داره اما بعیده تلاقن بیشتر میشه به لحنت الله ولا به قبره ولا به جهنم این حدیث رو ببره حسن صحیح از ترمذی نه و قال حوزیفه ما تلاهن قوم قد الا حق علیهم القول قولن جوذ عذاب الادیه خب این کلام صحابی سرده و قال امران ابن حسین بین ماصول اللهصل عليه حالفی بعد ااسار ذت و من الانصار الان ن وندهها هم زن سننددی از الان اون توی نگفت که عجیب بود به این مثلا حسین حیوانشین اصلیشه اوله شده استبت کاری میکرد مابی ش رو میگه و حالته عباس هم سب و خیلی عجیب بود به ما ممثلن خیلی مردمان عجیب بودن دیگه مثل این نجفی و لزات ما ندیده بودیم معرف هم بود در ارااق کسی که از نج میکاریم العراقیتان الان ما قسم لها ثور کرد من ها زنه که نارهه شد سلحنت ها خود اون حیوان لعنه فقال رسول الله خود ما علیها و و اعروها یعنی اگر این حیوان لعنه پس یادش استفاده نکنید چون نام ملعون است از این از اون استفاده نکنید بله بعد زره امام حسین گفت که و کعنی انظر الى تلك الناقه چون این پیغمبر رو این کالا لند لعن که میخواستن اینکه از راهایی بوده برای اجرا این که لعن در جامعه نیخده امزوره لا ترکن ناغذ هم شیده ناس لای سهر رو لها احب بله. بعد. بعد داره که انا آیشه قالت سمع رسول الله عبابت و وی لعنوا ذا اثر احیدی، رافیه برده بنده هست. وی لعنوا ذا اثر احیدی، سلطه تعالی، رو فرمودن و فرمودن یا ابا بکر صدیقین و شما هر مسلمانین مسلمان دو تا ولو برده اشو باشه و میکنی میکنید، کلا ورب دل کرده. فآثر ابو بکر مؤذن راغیقه. و اتى النبي و قال اونجا هاشم جا نشست عاشقانی دیره نوشته میشه این حدیثه نوشته که ابن دنیا. این ابن عبدالدنيا احادیث ضعیف زیاد داره خیلی زیاد داره وارد این بحث نشون البته یک ابو دنیا دارم یک ابن دنیا، ابو دنیا که جعاله هستن 4, 5, سال ادار کرده اون هیچی این ابن دنیا از آدم باشه ثوار الله و ثوارش ان اللعانه ولا شهدا یوم الیوم این جمله از به اصطلاح روایاتی که یه بحث دیگه هم در چون در اینجا آمده این در کتب احل سنت روایات زیاده مزمون با من یکیشی میخونم برای چون ما با عنوان سبه موتا نداریم خود ماها در روایات ما جد همون روایتی که صباب المؤمن کلمش بر عل الحركه که خوندی در کتب اهل سنت صباب المؤمن همون معنی صاب المؤمن همون معنی صاب المؤمن همون معنی صاب المؤمن آمده اما چه مصادر, مصادر ما نیامد در در اینجا در که روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله سعد ابوبکر ان قبر مربه در راهی به طرف طائف پیغمبر از یک قبر می‌پرسن که این قبر کیه فقاله قبر الله و رسولهی. که سعید از خود بنی است این مسلمان بود این شریف این عادتا این قصه بر توی باشه اینکه طائفون طایفی طائف بار پیغمبر حوالی قبل از حجتشون به مدینه تشریف بودن که سنگ زن و پایت نمبر خون آمد و برگشتن یک بارم برای جنگ تا اطرفتن که این بعد سطح مکه هست از تاریخی سعید ابن آس از بزرگان بنی امیه و قارش بود قبرش بود ابو بشت تعبیر کرد حضا قبر رجل کان آتیان ار الله و علا رسوله و رسوله و سعید ابن آس فقبر به ابن هم امرو ابن سعید که از مسلمانها بود وقال یا رسول الله تبر قبر و رجل دفاع از پدر شه یه بدی به پدر ابو بک که این از پدر ابو بک به مراتب بهتر بود فقال ابو بک یا کلمون یا حاضر رسول الله به مثل ها در کلام این میاد پدر کافرشی با پدر من که مسلمانم در فتح مکه مسلمان شد پدر ابو بک ابو قحاف فقال عليه السلام افروف ان عدیبت شتاب کردن به ام که در عدیبت شغفت نکن و انصرفه سو ما اقبله على عدیبت محل کرامیه بعد رو کردن به عدیبت گفتن یا عبابت اذا ذکرتمو الكفار فعممون فا این مکم اذا خصفستون قضل الابنا لعابا این عنوان سبل موتا اومده اینه یعنی حتی پیغمبر اکرم فرموده بودن که به حتی آبا و اجداد این ها که کفار بودن اونها را صد نکنی چون بقیه خانواده اونها متحصر میشن این روایات زیادی بله بگیم کفار اما نگیم این شخص برخصوص فا اینکم ازا خستستون غرب الابناعو لب آبا فکر فرناسو انداله اینی سبب سنوس و انلاله این سبب موتا سبب موتا به صورت طبیعی این بحث, این بحث ما نداریم توی نکازه نمی‌و سبب موتا به صورت طبیعی ظاهرا دو جوره حالا اینی که آمده این جوره خاص غیرشان اصلا توضیحش نمیده ظاهرا سبب موتا دو جوره یه دفعه سبب موتا مثل نهی که کافر بودن که اگر انسان اونها رو سبب کرد اونم برمیده پدر آدم سر میکنه خدا آدم سر میکنه این شبیه سرده اسنامه. حالا فسوباللزین ای از اون من دون الله فیاسوبالله الله به غیر علم دقیق کردیم یعنی این از اون قبیل نسبیه که من توضیح که از کردم نسبی و مطلق. یعنی اگر من منشعه این است که او برگرده و احانت بکنه اونجا سر. دقیق این ماله کسانیست که شخص فیلسطه صلاحیت صد داره وکه به خاطر بچه هاش به خاطر خانوادهش به خاطر عشیره به خاطر اکسال عمل صد نه این اون قسمه پس صد به امراض و موتا دو جوره اون صابل موتا که الان خوندیم کل مشرف عدل اون قسم دوم از صابل موتا یکی در قسم دوم مثل صابل مؤمن میمونه مطلقا صابل جایز نیست مثل مؤمنی که مورد دو تا عنوان داریم یک کسی که در زندگیش فرد بدی بوده مسلم بوده اگر س... و همه هم میدونم اگر سب بشه بکشش خامیلش نباهاش اونا شروع میکنن به حانت کردن و موزه گیری کردن به اصطلاح موزه ما این نسیه یک سب دیگه نه ما سه عهدکم فکف فوان. حالا کسی کار می میکرد دیگه فوت کرد ورش بکنیم با موت او این سابول موتا اینه یعنی سابول موتا کلموشت عرد حرکه به اینه ببینید من برای نمونه برای اینکه ببینیم ببینید چه اوزایی بوده چه اوزگاری هم بوده کتاب مصند احمد همول جلد چهار این چهاری که چهار معروف حضرت تازی چهاری خوبی هداش من جلد همون جلد چیه جدیه چاپ بهار به استدلال چاپ اه یه قسمت شو بگید شد در سبل سب <تصفح> نه ها سب هم سبل موتا دویس و صبح مخصوصا دیده همه رو از باب احادیث زیدر نه است. جز مسناد زیدر نه این که نه سب, سب و رو با هم بزنیم. و و هفت ساده یکی می دونم اونوشی من پنجان نگاه کردن یه جدیه هم داره دویست پنجا هم به نظر هم داره ببینید چه اوزایی بوده چه در همین صفحه سی نو دو بار دارن در یک مسند مسند زیده ابن ارغم همینطور زیده راوی معروف حدیث سقلین هم در کتاب مسلم همین الان که در قدیر و خوم پیغمبر خواهی میتوار کن فکرمون سقلین همین زیر ابنه هرم داریم که وقتی که امیر المؤمنین اینها را قصم داد در رحبه مقابل قضایی که مقابل دارال در کوفه بود که مولن کی از شما یعنی این گزارش در سالهای سیوه هفت سیوه سی سی هشت هجریه تص... ت... زمانشو در نظر بکریم حادثه ایغدی در آخر سال ده هجریه یعنی چیزی حوضه 278 سال بعد از حادثه ایغدی اونم در کوفه در وقت حادثه ایغدی یه شهر ای کوفه هم وجود نداشت ساحل سرسبز فرات بود اما شهر نام کوفه وجود نداشت حضرت امیر سامولا علیه ببینی اوناشه بکن کی این مطلب از بیغمبرشی من کنت مولا خالا علی مولا بعد در یک رباطشون داره دوازده تا خود عامه دارن در اردن 18 تا در اینا 24 تا تا 32 نفر براشون شهادت دادن این جمله زید بن عربن بود از طرف زید توم جم دی که شهادت می‌دید گفت من فراموش کردم بزرگ شد فراموشش کردم حضرت انگار ای این میگه ظاهرا یک بلایی به شده که قابل پوشیدن نمیشه پیشانیش کیسی میگیره سفیدی حتی داره عمامش هم پای میواد بالا میره سفیدی شیز میشه خودش هم میگوه اینه اثر نفرین علی سلام الله علیه حالا ایشون داره که قال نال المغیرت ابن شعبه من علیه اون مغیره با اون باز احالی که آدم واقعا چرم شنه چرم حالش رو بخون بگی مغیرت ابن شعبه با اون باز نال من علیه سب امیر المؤمنین کن و قال زید ابن عرقه این آقایی چون زید نیسته که بعد از اون جریان دیگه تنبیه شده اون که راجب امیر مؤمن خیلی حسابش جمع بکن فواد زید بن ارقم قد تا ان رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم کان ینه ها ان سب الموتى سلم تصب و علیه رادمات این که سب صحابه و شرف صحابه کردن الان شش می به روافت نسبت میدن اصل این مطلب را ان شاء الله میکنم اصل این مطلب مال خود همین هاست یعنی اصل مطلب مال اینه بله مثلا در همین صفحه چون روز قدیم ازیف بود 371 بله ابن علی ابن ربیعه قال لغیث و زید زید ابن هرقم و او داخل ال مختار حدود سالهای 65 و 66 هجری یعنی حدود 60 سال بعد از این مناشده ای که امیرالمؤمنین انجام او خارج من ال از ش مختار فقال له از سمعت رسول الله صلی اللہ علیه وآلہ وسلم یقول امی تار کن فی کن سغلین قال حدیث سغلین در کتاب مسلم هم از همین زید افنه هر شده نه حدیث من کنتم حدیث سغلین اون وقت در همین صفحه به اصطلاح باز داره ان قطفت ابن مالک دفتش اینطور قال سبب امیرون من الامرا مدازش مقیرت ابن است اینقدر اینها در مسائل عجیب من احتیاط می کردن حاضر می ترسل این خبیسه لعن رو بفردن خبیسه هم رضی الله عنه. ببین سبب تصدیه به سبب داری سبب امیرون من الامرا علیم رضی الله عن فقام زیدون ارغم بگیم با حاضر همون نظری نمیبون نیست که که نشیدتش گل کرده فقال اما انقد علیم تا ان رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم نها ان سب الموتا تلمه تصب و علیم وقت ما این سب الموتا مثل سب المؤمنه این مطلعه این نصبی نیست از کلم یک سب الموتای نصبی داریم اون جاییست که از مشرکین باشه به میفهمید؟ می اون جایی که از مشرکین باشه اون رو به اصطلاح یه جدیگه هم داره نه انصر به من دو صفحه صفحه دیگه هم داره دیگه سفن جوشیشه سه جاز در هم جلده حالا من حالا بعد میخواهم که کشم با خودم علایه های از... اون در مصند مغیرکم شعبه هست نه شد تبه صد بل موتا نه رسول الله صد از اجرایه به روزگاه. بلا؟ نه چنده؟ هم جلد چار تبه چنده؟ نه نه نیست همین مصندد احمد همین جلد چارم هست اونم تا همین جلد چاره من خودم روزه رو بردم نه این جاله. بلکه مصدد مغیرت اون از اوناییه که شماره داره این چاپای جدید به اصطلاح مصدد احمد که شماره بچ این چاپ قدیم اول معمر سینه مؤمن صادقیش که شماره شماره‌ای نداره همین پوستر همونه اونوار نه مثل قلب مؤمن صادق مثلا صفحه 356 که مثلا 350 250 در مغیرت در صفحه از همین چاپ جدی چیز اینم از عجایب بله حتثنا فلان عن المغیره ابن شعبه قال نه رسول الله صلی الله علیه و سلم عن اموات دو مرتبه هم داره مغیره بن شعبه قال رسول الله سبل اموات تظورم احیا این نسبیه یک سبل اموات مطلقه یک سبل امواتی است که نسبیه بل. علایه حاله با این با این که خودشون نرم کردن و از اجاید کار اینه که نشون داده میشه که من یه هم دیگر بکنم که این فردا توضیح عرض بکنم اینشالله عرض کارم کرد فردا اصولا سب به صحابه به این معنایی که اینها خیلی چسبیدن و اصرار میکنن شواهد پتی موجوده که از زمان خود صحابه در مکه شد مدینه شد این مطلب رو ارز کردم روایت این میگه دخل تا علا ام سلمه. روایت اینه دخل تا علا ام هم از کتاب فیض و قدیر مال مناویت شرح جامع و صحیح. این حدیث خیلی چیز داره اسالیم داره لیکن صحیح هم هست خود جلال خود سیویتین روی که من صد به حلیان بنی شمارست فرقی شده جلد آخر جلد 6 بودم از فصل قدیر و من سببنی فقط سببالله مسقد احمد و مستدرک احمد سلامه سه این حدیث سهی در سبب اصحاب در اینجا که فرده عبادتشان انشاءالد بکنیم که بحثی آشاشتی همیش بکنیم بیشتر سه تا عبادت در صد داره این یکی هی سهیه بقیهش نه سهیهش همه من سبب علیه فقط سببنی و من سببنی فقط سببالله این طور دخل تو علا ام سلمه حالا دیگه زمانه خود امهات المؤمنین یعنی هنوز امه المؤمنین امه سلمه زنده بوده در خود مدینه سبعه همی رو مؤمنین کرده فقالت ایو سبع رسول رسول الله فیکن چرا شما رسول الله رسول میکنید؟ فقالت سبحان الله چطور میشه ما رسول الله بکنید. میکنیم فقالت سمعت و یقول من سبع علیه فقط سبعنیم ممن شب فقط خیلی عجیبه این نشون میده دقیقا مشکل اساسی که الان اهل سنت در مشکل اساسی کار خودشونه